بسم الله الرحمن الرحیم و رب رسول الله علی سیدنا رسول الله و آخرین اللهم و و از که یه مقدار کلمات اصحاب رو متعرض شدیم در بحث به اصطلاح اخذ اجرت برقضا که آیا میتونه به اصطلاح اخذ اجرت بکنه یا نه مقداری از کلمات اصحاب رو متعرض شده اول متعرض کلام به اصطلاح شیخ دیگران شدیم من جمله از کلمات که ارز کردیم ما به کلمات چی که در کتاب نهایه و محسوس و مغنعه و اینها آمد خیلی است. اونا این صاحبا یک حکم دارن و اون چی که در محسوس شیخ آمده ترد میتوند من تو زیهن کلارا ارز کردم شیخ در کتاب محسوس اصل کتاب را از یک فریه شافیه درد و در کتاب خلاف شیخ در کتاب خلاف هم مطالبه می که در کتاب دیگرشو او فتما نمیگه اینم داری شیخ کتاب خلاف هم واضحه کاملا واضحه که بیشون از که از کتاب فتح مقارن احل سنتی رفتیم آراء شیعه رو اضافه فهموندن این کاملا در این کتاب واضحه به این, این دو تا کتاب کتاب خلاف و کتاب مخصوص یک معنای تاثیرگذار در فکر ما هست. اون معنا اینه که تفریعی بین اصحاب ما متعارف نبوده در این دو کتاب مخصوصا مخصوص محسوس فتح تفریعی رو اولید و این مشکل نداره چی به نداره شما الان میبینید بعضی را داشتن که مثلا ما یک کنونسیون بینمری در باید حقوق زندانیان هست فرص پنج ماده داریم ممکن از شما این کنشن بیاید در هااش هر ماده رهی توقاشی هم که در نظر ما به ماده ثابت نیست یا از نظر ما حکم اینه در... از این یک امر سببیع این هیچ مشکل خاصی نداره داره مثارت خیلی یا بودن نوشتن. کتاب نوشتن پس این کتاب اینعقا نوشته جنایه اابی هم آم به قادر عده در همافکنصدهاشز و آراشی در هااش او می مشکل خاصی نداره این کتاب مخصووبشه. اینکه کنار اول در نوع خودشی یا مشکل داشته نه، این مشکل نبود. اشکالی که در کتاب مقصودش شیخ هست، غیر از این جهت که اصلش از اون هست، نمی‌دونیم خود کتاب اصلیا تکرار داشته بیشتر تکرار داده نیم در این شرایط. و هر مثلا توی این که آیا قاضی به اینش عمل بیکن که یک جگه رفت باله نمی‌کنه، یک جگه رفت مثلا با اینکه خیلی چند یک کنگاری تفاوت یک نقطه ای کار اینه. یک نقطه کار برای ما هنوز واضح نیست که واقعا ما، مبهمه در ما شیخ آیا مثلا فرصتی داشتن با دقت تفریعات رو نگاه بکنن این, این چیلی مسئله مهم نیست چون از سلم اینا فروجیست که در فرقه شیعه نیامده خوب فکر کنید این فروج تا مطرح نبودید این ارجاع خروب به اصول اون حییعت اشتهاده آیا شیخ رضان الله تعالی علیه واقعا با اونو مثلا شخص میگن شیخ استعجاز داشته مزیگت داشته کتاب زیاد یاد زمیشه مراجعات زیاد بسه. این صاحب هم همینطوره من شیخی دارت معارف بزرگه معارف دینی ما شیخ من همیشه عرف کردم ما در کلیه معارفی که الان در وجود داریم مدیون شیخ هاس كه در واقع يكي از كوجان قرار نداره چه چه زي بله عرض کنم که شون می نه که اگر ما مذهب شیعه و مذهب شیعه توسی بگیم باید راست این مطلب چون شما الان فرسون در رجال در فهرت در حدیث در صرف مقارم در صرف تطریعی در صرف به اصطلاع معصول در حدیث در تفسیر در کلام در تمام این صرف معارض دینی از شیعه ما الان شخصیه دیگه ای که مثلا علامه در ریجاز او داره اون در شهرستانه شو کلام داره اما خاصی به اندازه شیخ در شیخان سه قیشن یکی از سه قهر مجموعه کلام داره بیشتر شده علایاهاله شیخ بلا اشکال تاثیرگذاره اما این چیزی که ما الان در مخصوص داریم میبینیم مشکلش اینه که به ذهن ما تخریقات خیلی دقیقی نداره خود ما هم فعلا قبول تطبیق بر ما انصافا مشکل این مطلبیست که در رای است وقتی مقصود شیخ بعد از محرومشه حدود 20 سال تا سا بعد دیهیس سال مورد اعتنار واقع شد افرادی مثل فرد شد ابن حمزه این الوخیله ابن همزه اگه دیده ابن همزه توشی تقریبا از مقصود تقریبا خیلی جزء جزه کم نظیر بی نظیر نیست. همه رو شما رو دارم. مثلا یعنی یع احرام دا اران به هم شده به الم تق بهشر عدد همه اگرشون پبیس و آماری صحبت میکنه. این آماری که در این کتابی شما تاسی چیز از کتاب شد و کرارا هم توضیح داریم که خیلی از این آرا به احترامش میشه افتلا واقعا قبول داشتن بعد در حوزه های ما جاافتکن. و همین من شد که در زمان علامه بگرم فلان رعی که به قسم مشهور است و معارض نداره پس قبول میکن. مشهور اسمش بعدها رو چند شهرت پتوایی مراد اشهار پتوایی یعنی عشق کتوسی در مخصوص بگیم تا زمان علمانه از ما به جه اون بحث مفصل کار شهرت پتوایی خود جزگانه بخشیم بیشی هایی کسی شهرت پتوایی چرا پیدا شد و رضا چلاره هم ارض در هیچ فقی از فقه اهل سنت نیست چون چینچین بیوا کردن چی یک نفر مساله بیره بگه و دویستی ست سال بایشان با موافقت بکنم. خب بعد دویستی ست سال موافقت بگه این مشغول در در عبارات علامه در مختلف را آمده. آمده نه انه ها مشغول دلیل ما اینکه این است معارض نداره پس قبولش میخوا ممکنه روایی باشه ممکن ممکنه عملی باشه چون نفهم اون شهرت رو و آن خویی دیگه شهرت سر است روایی بیشتر میخوره به زمان خود معصوم شهرست روایی استقراش مثلا در کوفه دو روایت از ما نصابه هست دو نفر یه چیز نفر کنید دو نفر یک چیز اون بیستار این مورتن مشکول محصول. این مورتن شامیست اتطور از آمه داریدیم اون رو می‌خواید من دیگه واسه از این بونه بهون از سال 850 بهش کتابشون گفتم اما اصل اصول شهرت پسند رو ایشون فرمود نه درست شد جوانی شما خدایانشون درست رفتن خب اینا اینا یک تصور داشتن یک تصورشون این بود خب شما الان قبول ن تصور رو اون که بحثش واه اوجیتش خیلی قوی نیست اما اگر حجیه دیگه نمون قبولش شبیه چیزی که ما هم تو اصول عملیه میگیم همه شما اطلاع عملی میگیم اندامه شو این گرم داره مثلا اندامه وقتی گذن خبر سیرسا حسن نظر شاید به خبر حسن اینطوره. خبر حسن حد بسن اگر ما آرز اما خبر سیر دائما حد بسن ما آرز باشد اما شما قبولیم داره بگیم یا حد در زنیز بگیم اما اندامه اینو داره این لنا حسن خلان و و قبلا معارض لفت چون حدیث حسنه معارض نداره قبول ما ما اسمش کشون حجت متوسطه ممکنه شبیه اصل عملی حسابش بکنیم ممکنم چیز دیگه بگیم چون این ما توضیحات خیلی مخصصی در خبر سطفانی گفتن اگه با اونا اینجا تقریبا بخونیم دستوی باز باز باز ممکنم بگیم که اینا میگفتن داقل این شهرت بهتر از اصل عملیه اون سرگه قدم خراب باشه و دلقیل از آب سرشتاره ولکه این شوان هم هر قد ضعیف باشه بالاخره بهتر از نسته با حسول عملی ماراجه کنیم خبر سطنونی هم هر ضعیف ضعیب باشه بهتر از نسته سن با اصل عملی ماراجه کنیم چون اهل سنت به اصل عملی ماراجهی می کردن نوشنیستون شیعه هم مثل مرغوم ابن اصل عملی تا خبری که می خود چه فیداد بیکرد به است که ماراجهی لذا ممکن است که اینها خود متوسطه قایل بودند که ظاهر عبارتشه ممکنه رتفه اصل عملی برش قائل بودند ممکن است بر اینجور مطالبی رتفه وشک قایل بودند ما بین اماره ما بین اصل عملی ایشون داره لما انهو مشهور ولما معارضه داره خب تو مختلف داره جالبه تاسو کرده ایشون سراحتا تمثل بعد تو اصول ما عمل. خود رو اصول است ظاهره که هم داره اما شیخ خیلی مفصل ها اما کته خیلی مفصل اما اشکال دور هم به استمای از نمودی علما همون میگه گفتن میرا نراوید اون شرکتا به میگه میگه اگه شهادت خاصه حجه باشه لازم نه حجه نباشه چون مشوره بین خواهرین و می شه مشوره واقعی چون خود شهادت شکی برابرش شهرت فتوای حجت وشکی است که اصلا نیست ایشون از غذای موردنخویشان مشهور اینه انا الیاهانه اینه من توضیحاتش رو و مذاهب متعدده عرض کردم یه جوری میخوام تکرار بکنم درazem اینه که آرا مخصوص نه همه مخصوص انصاف است حقش این که اصلا اسمش در مورد شهرت این شهرت و مرموم لایلی ما نداریم یه شوهره روایی دارن شوهره روایی اگر ثابت بشه در باب کاربرد داره با مال این مال اعتناست هست ما هم میشه یه روایتی که مثلا 5 نفر نهار کنه یک نفر برای ما هم میشه برای ما معنی نمیشه اگر ما هم در کافی از در تهذیب فقط در کتاب خساله است اینا میشه میشه برای ما هم در کافی در میشه یا اثر دونگون شغلت عملیه شغلت عمل در استقای اینها اگر روایت ضعیفی باشه فوقاهای قدرمای ما بهش فتوا دادن مرادشون از عمل در اینجا فتوا نه عمل خارجی اگر روایت ضعیف باشه به فوقاها برو فتوا دروشن این در استقای هم گهن شغلت عملی این فائدش در اصل حجید خبره اگر درست باشه اون در آرز بود این در اصل حجید خبره تا گفت اگر صورت عملی بود اون خبر این این حجت میشه موزه شوشه تو سر بوم شورا فتواییه شورا فتوایی این است که یک فتوایی بین ادمای ما مشهور باشه دلیل هم نداشته باشه اون گفت این که بیان دلیل هم نداشته باشه در حقیقت همون نقطی هست که من بازم ترجمه این اینطور گفتن یک فتوایی مشهور باشه دائما ما توضیح هست این سر اون فتاوای شیخ توفی در مفسیته. چون تطبیقاتی از عامه گرفته دلیل هم نداشته بعد از شیخ طوسی واش موافقت شد شوارد فتاوی این تحریر من عرض می‌کنم آن حالا بعد از یعنی یک فتاوی مشهور باشه دلیل هم نداشته باشه ما تحلیل کردیم گویا اینکه در اینا درس سرش اینه شیخ تو مبسوط بوده در روایات ما هم نبوده در فتاوای فقهام نبوده شیخ گرفته از کلام به این معنا یک کتاب سنی رو شیخ گرفته آرار شیعه را بعد از او بشه اضافه کرده این کاری بودی که منو میشه در مفسوس کردم و لذا خیلی باید توجه داشته باشین. یکی آرار شیخ شیخ دو نقطه داره که خیلی باید بهش توجه بشه اشتباه بیش نگاه که این عب... شیخ هر از واقعا بسیار بزرگ بار بسیار شده درم لهو حق و عظیم یعنی تو همین لهجه که ما هستیم شاید از دیگه 70 80 درصد ما عارف دینی ما مذهبیون شیخ هستیم همین الان همین الان الان در اجازات ما گفتم خیلی زحمت کشید شیخ انساب لكن در هر جایی شیخ که مشکلات خاص خودش داره اصلا شیخ به طور کلی در تمامی زمینایی که اثرین ما تمام به من انفراد داره تو رجال انفراد داره تو فهرست انفراد داره تو فهر انفراد داره تو حدیث انفراد داره پس تو اصول انفراد داره این هستی که از خسارس شیخی نیست اگر این انفرادها جمعوری بشه و تنظیم بشه خود من چند سال پیش را که بی حالی و بی توفیق به الله به اسم خسارس و خسارس این انفرادات اختصاصی ویژیوی های مدرسه تفکرات مشته بشه این اگر جمع آوری بشه شاید بین 20 تا 25 جلد بشه در مجموعه این معارف دینی ما چون یکجا جمع نشون ما یک لحظه الان می خونیم مثلا اینکه یه ما دیگه این مثلا گستر هم نمیخونه خیلی اون انقراض ها بروز نمیکنه ظهور نمیکنه چون در تمام موارد انفراد داره این انقراض ها اگر جمع آوری بشه حلاجی بشه یا حالا قبول بشه یا قبول نشه به نظر من یه صفحه تازه ای رو در دید علمای حوزه به معرفت دینی باس استعاض میکنه چون مثلا ای را دیگر ما. و هم به هم این رو سال قبول کردن دیگه قبول ما خلاف کلی اجماعی است و راست اون به ما الزمیه هم این اعتراض شیعه کل خودش به عامه کردن ال نمونه حیث اوه این اعتراض شیعه نیست کتاب خلاف ورده جای دیگه نمرده کافی ادعای اجماع شده درش تصدیق در مذهب این اصلا کافی است. این قاعده که یک مبانی خاصی شیخ انا نقطه همین الان من با هم اینو یک مثال خالصانه تکمیلش بکنم مثلا میگه خیلی مرجح متعوض میذاره اون این از این طرف در باب معرفت حیث سه مبدا هست خصوصا یه مکتب کوفه است که رو عادت خیلی مانومیده چیزی رو مانون یعنی میگه اگر اگه اول آدرس خوندی 5 تا خوندی آخر آدرس دید کلا حیثه عادت خیلی داره یه مکتب مدینه هست که صفات خون خیلی تاکید داره. تو رنگ باشه، سیاوجه چه این باشه. یه مکتب دیگه اسمش احمد محمد و ما هر دو رو جمع کردیم خب ما به مشکل برخوردی. هم می‌خواستن با ادله عمل بشه، هم به صفات. این قائد ما امکنه یکونه هست این مال ابو حنیفه اون معنای خودشه. من فکر کردم. مال خودشه چون معنای خودشونه. خب برای شیخ این رایت که این معنا ما امکنه گونه هست. خواص شما تعجیل بکنی هر تو اجل حاضر قرائت معنی اخ... این قاعده الان اون قاعده تارتن اینجوری خونده میشه کل و ما امکن کل رو به زم بکنید وقت مخ... ما میشه موضوع کنایه از خون کل دم امکن یعنی خون این یه جور معناشه یه قاعده‌ای که میشون احناف کل ما امکن کل مفصول بخونید که منظور هست مالک در ما زائد است به اصطلاح اول سوره قطعیه شخصی کلیه میشه کل ما کانشم totale این کل ما متصل نمیشه میشه اولی متصل نمیشه میشه. خود این قاریه امکان چجوری بخونیم کل ما امکنن يكون ان هي فهو بخونیم یا بخونیم کل ما امکن ان يكون هي سو کل ما امکن آه, آه خیلی اون که ابو حنیفه گفته اون مال اولیه کلا ما دومی خب دقت می‌کنید الان من خیلی مشکل گفتم میدانم که اون هر جایی که براتون خیلی ابهام بشه لكن محاسب فقط یک الان چون به زبان انجام شد یه مثال زده بشه خب این توجه درست ما رو عادت حساب داریم راست تو روایته ما رو عادت بحث کردن و ما نو داریم به قول ما لكن ما سفاظ رو هم آوردیم اینکه که کل ما امکنن یکونه هیج این مال رأی ابو همیته و کوفیه هایی است قابل هستن تمام معیار رو آدن لذا میگه اگر روز اول هیج دید پنج روز هیج دید روز آخر هم دید مثلا آده شیش روزه میگه کلن هیج دید ایشون قاعده که کلن هیج دید درستان که ما قاعده کلن هیج دید <تصح> توجه نشده یه یک قاعده ایمان یکی دیگه بوده <تصح> اورمشو شده جای ما بعد اجماع شد. اصلا خلاف... اصلا خلاف این عدد مثلا پس... شده مثلا قبلش اختلاف مثلا غیر اختلاف جای ما بود مثلا سی سر و پوشش مثلا خیلی میخواهم که خارج بشم فرض اینکه معروف شده یعنی مثلا خیلی مجمل میگم ان الله تو که معروف شده که در گوشت در ولوق خنزیر یا خوک هفت بار این یه روایتی منصوب است و علی بن جعفر منحسرا در مخصوص در کتاب تحضیب شیخ آمده منحسرا مثلا ما کافی داریم این حدیث سره این حدیث داره این در سقیح نیامده در کتاب علی بن جعفر نیامده تو قربلسته تو تمام مسادری که ما از علی بن جعفر داریم نیامده منحسرا در مخصوص شیخ آمده منحسرن. شیخ هم در هیچ کتاب کتابی فصلیش نگفته نشده. نه در محصول نه در خلاف، نه در کتاب نهایه، در هیچ کتابی هم این فصلا هیچ کس قبل از شیخ این رواده نگفته. هیچ کس قبل از شیخ فصلا نگفته. خوبه دیگه همین. بعد از شیخ هم فصلا هم بردن. اولین کسی که تقریبا اول فصلا محقق در شرایط اونم شده کتاب کردی هست. فتوان برسید با اولین کسی هم دیگه یه جبا که هفت بار شسته بشه اللهم افتر خواهد این اولینه قرن یک امترام در اونجا. در هیچ کتاب فکر هم خودش فتا نداره یه حدیثی اول از بن جعفر نه اون حدیث هسته کافی هم هم. تو کتاب علیه این دوگومی سیست و سالف به اینکه که ابا برقر خیمدید یونزه مثل انام این فقط در استفسار ندارد تو هیچ این علی علیه نجابر در هیچ روایت شخص دیگری هم دید. در هیچ فتوای در فتوای خودش این هم, خود هم خب این اصلاف هم همش دیگید مشکلی نیست خیلی بذارتون حالا مشکل دروسته اما الان تقریبا صدکی که من میگم تمام مواصلی ما گفتن اما فصولو نمیگم تا اینکه میخوان تکنمو بگی تیم اردشته همه چون راه سعی میگن دالوان شیخ اعتراض داشته باشه چرا تعجبی ایجاد نکرد اصلا علام از زمان علام به وقت قائل به وجود زیاد دارین که یوسف ثعبان باشه اما قبل از علامه نداریم محققم که جایی شونه که مرز بزرگوز یوسف ثعبان باشه ان یوسف ثعبان باشه من اگه به هموازی مواز بشم ببینید شیخ توسی همچنان که الان اشاره کردم بسیار بزرگ بار بسیار و قلب بسیار تأثیر اما این دکات هم همه باید اتصاب بشه یکی از کارهایی که ایشان متاسبانه یعنی کاری ایشان نیست که خب بردان اوال این کار رو میکردن کتابای محسود قبول شد خیلی هایی هست کردم ما بهترین کتابی که داریم محسود. تقریبا سعی کرده نقاط مهم مبسوط رو بگیره از صفحه تفریعی، نقاط تقابل اعتماد و جمودوش می‌خونه محقق در شرایط. انصافا محقق هم فقه معصور رو داره هم فقهی که منسوسه. بله فقه منسوس رو با استدلال روایی نذارن که من چرا میشه ارکادم خطواییه نه روایی. مثلا اونجایی که ما روایت داریم این طبیه اقصر صحبه که منه افوال مالایو کلن. این روایت اما محقق گفته از گورنه این فتواست کتاب اده از کتب اصحاب ما کتب اصحاب ما ببین، یه ادهشون روایت کامل اونه سند و محق این استش باشیم اهد یک ادهی سندار حض کردن مکرهات حض کردن خود مکن رو این است که عهد انتقال از نصوص به فتاوا باشه که هر رضا بغداد ها اصلی برداشتش تقوا آمد دو البلو نجوث نیامت اختلاف و احوال و موارد کلا این موقع شویم عهد فتاوا عهد فتاوا در شیعه از زمان مثل شیعه طوسی مکتب برداشت خیلی موثر قومیا خیلی سعی میکردن که تو عهد فتاوا وارد نشد این نصوص تعبیر می‌کنن اما بغدادی ها چرا مثلا فرض کنید 30 40 درصد اهدای خطو از زمان شیخ در همین کتاب نهایی و مغنایه شیخ مفید دیگه تقریبا حدود 90 درصد یا میشه 200 درصد از شرایط ابن هم 70 درصد ابن ندیم نمیگه ان جوان بوده استراق داره مشکلات داره اما شرایط مثل بسیار پخته، فوق العاده فخیره انصافا دی زیاد که عقبه قواشی است این احتمالش هست خیلی قوی اطلاعاته خود غالبا در و خیلی فکر کرده رو مطالبی که آورده رو کلمه کلمهش فکر کرده چند یه روز واضی به شیخ مصطفی صحبت کرد و از اینو حقه این ایشان در کتاب مقصود در آداب قضا اینطور گفتن اما مانیعه اللهو اخذ الرزق علینا لایهل فجمله بود ان القاضی ما انعه من علیه القضاء اولمیت یتریع ما در بحثه قبلی کاملا توضیح بدید این تعیین علیه لمیه تایین نه در روایات ما آمده اتقرد کنم و نه در روایات معروف از صحابه آمده این مال فتابایی بوده که احل سنن بودن و رو خائزه گفتن چون اگر قضا بزدارو متعین چون احل عزت در قرطبات بوده اگر موشهر دیگری نیست، ثغیه دیگری نیست، منحصر ظریفانه ایشون عقد نکنه، اجرت نکنه چون متعینه. چون اجرت و اجرت در واجبات در است. روی قاعده قائل شید در نظر در روایات ما هم این نیامده. در قصاوای قبل شیخ هم نیامده. در کتاب خلاف شیخ، در کتاب مثلا نهای شیخ هم نیامده. تو مقدمه شیخ مفید هم نیامده. تو مقصود آمد بعد از مقصود نقل شد افراد یا مثل مرحوم محض قدس الله نفسه این بحث عبردن و این اصولا پیشمار بیشه نزده فه امکان من من یا جوز الله و قضا و لمیتا اینه علیه فه اما ان یکون الله و کفایتون اولا کفایتون اینه است که حتی از عمر هم نقل نشده در کتابه اهل سنت یا ما از امیر هم نقل نشده این مال پقه هاشون فعنده یکون لفو کفایتون جازو لفو اخذره و, و امکانو لفو کفایتون فل مستحب بینام مثلا در کتاب مرحوم شیخ مفید داره که حل اخذر لفو انلای اخذره نداره که کفایت باشه نموشه تعییون باشه اصلا از این بحث من داره فلمستحب انلای اخذ فعنده اخذره جاز و جواز و اخذره س احتمال میدم احتمال میدم اینها همه در همون متن سنی بوده احتمالی که من میگم این متنی که شما اینجا این همون متن سنیه شیخ درش تصرف نکرد و لان ریتل مولل و هاغا مراد به نهایتا استدلال سنی ها خیلی می مثلا پس واغا اجماع چون اجماع خود در حقیقت میشه اساسا جزء مصادر تشریع. پیش ما جزء مصادر تشریع نیست. ما که اصلا کلا حجتی به قبول نداره. اگر مثل سید مرتضی قبول دارید چون مشتمل بر قبول امام است. اونها نه خودش مصادر تشریع میشه. سعمما ان تعین علی القضا فین معلیکون روکه ها اولو فینکان لوکه برای هر معنیی اخیرو تمام این تفاصيل دیگه وارد نمیگه. لان هو یؤدی فرضاً قد تعین نقدر میکنم؟ خیلی تعاویر به اهل اهلسانت میخونه یعنی نقطه ایش عقل در برواجه بست اگر نقطه عقل عزت برواجه بست یه همون نقطه است که من کراره هم اگر نقطه نقطه علمی شد من دهی سراپا تخته اسمش روشن تبنی در مقابل تلکی کلمات بزرگان سابقه ما اگر تبنی باشه یعنی خودشون استفاده کردن استدار شخصی کردن ما متعبد با آراء اونها نیستیم دوسته ما متعبد با آراء شیخ توسی نیستیم حالا بعضی جریفتر انگه هم رجال و نه نارجال خیلی حالا این ترگیر شیخ اینطور طور استظار کرد و این مسئله مسئله خلافی مسئله سوهند کلامه این شالا خواهد آمد وجودی برای این ذکر شده که آیا اخذ اجرت بر ماجبات حرام هست یا نه؟ و مراد از اون دست اینه که این وصفی نفسه کار به موارده مثل قصد قربت و بعضی واجبات نداریم اون بحث اینه اصلا به لحاظ قانونی هر جا که آمد یک چیزی واجب شد این مفاد قانونیشی اینه که شما دون مجانه انجام داریم نمیتونه اخذ اجابی اصلا به فسن این بوله در, در،, در باز این به مادرش دیگه تا در باز کن در در باز کن اصلاً. اصلا مفهومه وجوب اینه که حد در اخذ ح تقریباً شو بیانش این شفا فی مواد این بحث قانونیه اصلا همیشه اصلا با موازین با این نیست که تعهد شرعی باشه این یه تحلیل قانونی داره ما ان شاء یه مقدارش تو موازه اصول مترسی رو مثلا برای میگن اصلا تحلیل قانونیش اینه این عمل از حیطه قدرت شما خارج میشه وقتی از حیطه قدرت شما خارج شد یه قاعده در عمل هر انسان محترم این عمل شما محترم به اختیار شما باشه در اختیار شما نیست دیگه محترم نیستید شما اخذ مطالبه پول نمی‌تونید بکنید یه وججینه وجود دیگه هم داره که ان شاء الله ارجو وجوه لفظی داره وجوه قانونی داره که هر جا وجوج آمد این معنشی مگهواد مجانی باشه البته این مطلب درسته دلیلی ها وجوب هست و از شواهد در این مجانی باشه اونجا بحثه یا وجوب است با اونجا باید مجانی باشه اونم بحث دیگه‌ست این ما محل برسی خادم کردید ببینید این استدلال استدلال احر سنت لعنهو یاد بیفرزن قد تعین علی او قد یاد بیفرزن این تعبیر اونها حالا ما چی رو گیم لعنه جواز احر رو جوتر بازی با جایز باید لعنهو یکندهو حل داره که لعنه لأ. علیه فرزن نفقه على ایاله این استدلال ها استدلال سنید و فرزن آخر و هوال خضا و ادا اخدر رزر جمع اوی نفرزه این خب ما در روایتی داشتیم که از موسف نگفر سوامو داره فرمونه که بعد انبال پیش و باید جمع بشه سرف بخونه برای اعوان خودش برای کسانی که جهاز اداری و نظامی دستمونه که قبله خضاییه از کلیم از وقتی که به قبیها ها حساب در موارد دیکتاتوری و نظام شاهی بیستاجن یکی از مسائل بسیار مهمشون این بود ما باید قابل قضایی رو از سلطان جدا بکنیم چون سلطان اینجوری بشه این می‌تونه یکی قانون‌گذاری از سلطان جدا بکنیم یکی هم قاوه قضایی این تضقیق که که به اصطلاح امروز در خیلی در همه جوامع اتفاق داشت یعنی من نمیخوام شهر قانون این مثلا برای اولین بار توسط همین آریونه که اصطلاحاً انقلابین فرانسه به اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه در این کتاب روبرت اوان مونتسکیو هم شرح مفصلی از این جهات داره. لام علیه طرز نفق ایاله و طرزن آخر ما نمیخواد از این واورد بشیم. بگیم روز شونه اداره اجتماعی نظام اجتماعی اداری داره بشه. حالا ایالش داشته باشه، نداشته باشه. چه ازدواج کاریها نکرده، فرض پول پدرش میده، نمیره. ما به اینا کار نداشته. ا اخضرهای و جمع بینفرزین استال زعی پیش و جمع و بینفرزین او لامن اسقاته ح ما در چه فرمول حالا اندننا و انده ها این همون تفریع. انعه ما هم قبول داریم. من به نظر خود من ها نسبت نمیدمم. متاسفانه که اونجای که من گشتم هنوز این چهسا رو پیدا نکردم. من چرا نند که مخصوص، ازش الان ما مخصوص سرختی برای اون مخصوص سرختی سنی انفیز شاذی نیست و با این از زمین تا آسمون فرق است این مخصوص سرختی فرهنگان فقه شیعه ای کاه تحصیلات مثلا احناف این فکری ما این کتاب مخصوص سرختی واقعا تفکرات خوبی داره ال خوب داره نافع انساطا که خیلی مشبهه. یعنی حسابی ممکن یک مسئله باشه خیلی در هم واقعا در در یه علمی یخوفه الان انسان بالا از اول کتاب تا آخر درست کامل ببینه یه چیزی در کار در هرج ممکنه توی بیات باشه توی انسان غیر مناسب ببینم چرا اینقدر از و فلان نوشته فوق العاده این کتاب مشوخه فوق العاده خوب بود این آوان حنفی ها به فکر می‌افتن این فهرست مراتب اعصاب اوام مرتبش می‌کردن یه چیزی داشت میشه ممکن داشت شما صد از این حالت تشویش مطلق درش یا علایهاله این کتاب رو هنوز پیدا در کتاب حاجی خلیفه کشف زنون مقصود رو عبرده به اونان فقه شافی لیکن به شیخ توسی ما نسمت داده یه خیلی عجیبه نمیسته در محمدت در حسن توسی از شافی دیگه خیلی از اجاری کار رو اون آقا بردسته شیخ و طارفه شا. خب شایدم ایشان تصوار شاسته انسان کتابی که می کنه فقه شافی می کنه این روز باشه ابتداید که انسان کتاب روی کنه نه فقه مالک چون من خیلی سیتریه اونطور کلیه اما خب ماشون معنوستم با پخشم این از کتاب پخشافی میفرمیم اما اصل کتاب چیه؟ من الان خیلی درست نمیدن ببینیم من چی از کردم تفریات شیف یه نقداریش رفت به کتاب شرایط و بعد به علامه بعدم یه نقداریش تو جامعه ما افتاد بعد از مثل اولین کسی که تقریبا میشه با سرمن اولین کسی چه کرد اینها اینا رو مناقشه کردن می‌آد از کجا اومده این تعین علیه قضا چه کفایتی اصلا کجا بوده کدوم روایت بوده کی گفته تقریبا در میان فقهای ما میشه گفت که خیلی مرتبه تقریبا تا حد زیادی در درصد مطلب رو قیاام کرده مقام مقدس اردبیلی سایه هرجام مقاصد را که نه انصافا مقدس اردبیلی در این جهت موافقت در این جهت خیلی پرتباح کرد. البته کار باید تکمیل بشه و به ذهن ما این نحوه کار رو که شون شروع کردن توسط دوتا شاگرد بزرگوار که مرهم کو صاحب معالم پیگیری شده اما نه باز دتا با شاگرد به حد ایشون نمیرسن صاحب معالم کار جدیدی رو شروع کرد در فقه شیعه که تا اون زمان نبود بین متون روایات مقایسه کرد اون وقت نبود که من قله در متن کار میکنم <تص> اولین کسی که بین متون کار کرده صاحب معالم وقت وضیع ایشانی که کتاب ایشان ناقصه تا کتاب حج عبای کتاب حج یک دو فقط احادیس صحیحه و زریفه رو اومده حسن رو اومده مقارنش بین اینها اگر ایشان تمام کتاب فقه رو تمام تحریب استفسار رو صحیح و صحیح میشون می‌فرمود می میفرمون یک نعمت بسیار بزرگ الهی بود چرا چون تا اوجهی که ما خبر داریم تنها کسی که ما میدونیم تحضیل خط شیخ در اختیارش بوده همین سال معاله خوبی این منطقه از جوانه ایشان وقتی مقارنه کرده با تحضیل خط شیخه و این یک نعمت بسیار بزرگی بوده که در اختیار ایشان بوده حیفت این عمل ایشان ناوسته بعد از این هم فقاه ما پیگیری نکرده هست. مثلا تو جواهی و تو دیگران بیان این پیگلی رو بکن تو مشهور ممکن است یه فقیهی درن چون ما قده از ماها در نظر شست جل هفتان جل هشتاد دوره فرمتون شاید مقارن میکرن شاید مقارنه اما این مقارنه ای که منطقه انجام داده این تو حوزه های ما جا نیفتاد خود من این کار زیاد انجام میدم انصافا زیربنای این کار رو و دیران هم حسنی انصافاً شما این روایات ما در قرن اول و دو هم یه در قرن یازده هم مبارنه میشه خیلی فاصله زیاد زیاده از این خیلی فاصله زیاده و شما این چه کار میکردن مثلا من در مختلف علامه دیدم در همه رو مبارنه مکردم مختلف علامه تا اونجایی که من اصلا از, از کافی نمارم میمکنم سد دسته تحضیم فقط تحضیم این من زیدم دیگه ترمه من مختلف کار کرده اینو این و مرحوم محاله این کار کرد و انصافاً دیر بود یک کار این کار می شد کار دیر بود در تاریخ. از قرن دوگم تا قرن یازده هم خیلی فاصله زمانی زیاده تا قرن ده این کار انجام نشه خیلی فاصله زمانی زیادی. و متاسطحانه بعد از ایشون هم پیگیره نشد مثل, مثل کتاب مثلا وسائل فبدس الله و سره اصلا مقارنه مصول نداره. یه حلی وافی وافی باره بهار بود ندارد مرهوم آقای شبر جامال محارف بله احکام نمیشه نداریم دیگر من یکی که بخوام جامال احادی اساس کارای بوجه دیم بود این مقارنه بشنه مثلا اساس. برنامه جامل حلیث من از برین بر مرش ما قابل بحث ها خیلی خارج میشه اما فوارد متقره که اینشارال ناف باشه و می کجای تاریخ هستید چی می خواهیم. چی کردیم و چی می خواهیم. الان مطبوب ما چیه؟ این راج به این تا اینجا راجع به بحث اطلاح مجررک شد. تا اون نتیجه ای که معان به این نتیجه رسیدیم تا اینجا می این شد که بحث رشوه، در روایات رسول الله وارد شده با عنوان رشوی در روایات ما مطلق نیامده آمده این سنده های صحیحی داره در روایات ما اونی که آمده ار رشاف الحق. من مجموعه اخبار جمعه بود اکتفاق جمعه باهای اسلام شیعه زنی کموزیاد در این که رشوی در حکم هم این هم مطلق بعد از اهدی رسول الله در صحابه این بوده خوب دقت بکنید هیچ چیزی دیگری که از خود فقنبر نقل شده هدایل عمره یا هدایل عمان خوب دقت بکنید اون متنی که نقل شده یا عمره یا اماله توش هدایل قزات نیست بحث ما در بحثه اگر عمره باشه که خب بخش قوه مجریه است به اصطلاح استبار دولت یک استبار دیگه اگر عمران. اگر عمال باشه شامل قضا میشه چون در اصطلاح عربی کسانی که مجموعه وابستگان به اصطلاح عمال الان در لغت عربی یعنی کارگر معنا میشه اما در اینجا مراد کارمنده نه کارگر اسطلاح هم در عربی معاصر کارمندان رو معذف میگه کارگر رو آمن میگه عمال جمع عامل کارگر اما در این روایت مراد کارمندانه یعنی کسانی که یا اگر بخایم به لغت فارسی مثلا روشنفکری معنا بکنیم کارگزاران اموال جمع عامل در اینجا معنی کارگر نیست کارگزار، کارگزاران و حکومتی کارگزاران دولت کارگزاران نظام خدایای اینها قلوله قلول معنی خیانت یعنی دزدی از کین قلول در اصطلاح در صد لغت عرب بیشتر روی دوزبی که از در جنگ میتردن غنیمت و کسی کشی مفرد غنیمت اون میموتن قلوب چون اون دیگه نستاق خیانت به دیگران موچن همه زحمت کشیدن جانشون جنگیلن غنانی میدرد سو داره یکی سوی اون رو به دوگه این در حقیقت درجه بالای مخلانتی بعدها قلوب به مطلق خیانت گفته شده ولی قلوب قائطن عبارت از مسئله خیانت در مغنم. در مغ شد. هدایل امرا قلودون یا هدایل امام قلودون راجب این حدیث چون بعد مرحوم شیخ توضیح خواهد دارد. یعنی مطلب رو تحقیم میکنه بعد من توضیح میزن پس بنابر این دوتا در روایات رسول الله بود البته فرقش اینه که لعن الله راشی و المحتشی در مسادر درجیه که اهل سنت نیامده مثل بخاری اما صحیحه تو مسادر درجی دوشون آمده به نظرم داره ابو داوود داره چند داره حالا من تو زهرم دیتارم اما هدایر امره غلولون تو مسادر درجیه و دو هر دو نگام اما تو مسادر بعدی همین که شما امروز آوردن مثل کتاب سنن بی حقید در اینجا داره در کتاب سنن بی حقید داره اما در کتاب ام آوردن بعدی خونم امروز که نرسلیم بکنیم. حتاب فتح الباری ابن حجر تصویح میکنه که این حدیث حدایر عمران غرونون ضعیف کنون این قبول نداره به اصطلاح اما این در مسادری آمده نه این که این نیامده ولو در مسادر مشهور به اصطلاح نیامده در مسادر مشهور مثل بخاری حسه معینی آمده که شهر رو پیغمبر برای کاری گذاشته بودن وقتی که برگشت از کارش آدم ساده دو بوده اونی پیش که اینم برگ من در این ایام که کار کرده اینا درآمدی نمیده روش جی وجیو خودش گفت تو اینا چیه اینا بوده که مردم بدنیش فرمود محمد از وقتی خونه بودی که چه هدیه دیدی هدیه مال من بود که رسول الله اینطوریه لوکان فیت ابي و, و امه خونه پدر مادرش اونم شوخی بودم تا تو خونه چیکارا این مال شما و مال من این بر من هدیه آورده این این روایت بخاری هم داره اینجا اومده شما بعد می‌خوام بخونم مثلا برای اینکه خاصم این روایت رو داریم این بین اهل سنت اما ایشون یک حدیث دیگری داره که بله هدایل عمره ابو اگر هدایل عمره باشه این شامل آدی نه یه مسئله دیگه هم دیدم حالا اینجام که نه ارد هدایل عمان اونها اینجا نیازیشون اگر عمان باشه شامل قاضی میشه یعنی کارگزاران دولتی حکومتی نه کارگران کارگزاران تضایعی که دیگه خیانت پس بحثی که آمده اجرت نه آمده رذق هم روادراتی بنا اینه گفته شده خوندید مصادرش رو اما مصادر صحیح نداره کیولوژی بر از زمان عمر بعد امیرالمسلمه مسئله اجرت مفصح شده هدیه هم مفرح شده اصله و اجرت مسخ شده از کدی در یک فقهی از زمان از اهل سنت ادعا شده عقد اجرت حرام است ولی اشنو ظاهرا خلافی باشه اون دی هم که از اهل سنت نخر شد یکیش اینه لا نه خدا رزق اجرم الان نعذر بینند ما ما برای عدالت پول نمیگیریش عدالت یه مفهوم و بسیار والا نیست یک شردار اون شاعرانم شعرش بکنه اون گل فروش میگه می تو گلی میگیری در مقابل پول چه پولی میگه در مقابل زیبایی گل نارنجت گل برنامه که فاوره تعویض و پول نباشه خب عدالت به طریق اونها و عاد خیلی استاد هم همین دارید عبورن مشو من ادارهت یک منصب این یک منصب بسیار عالی از ازلش در این که این منصب اولو چون میاد یا این حکم الله چون باز این کارو بکنه این باز این کارو بکنه عظمت این, این, این منصب اختصار میکنه تواضع پول نکنه چون خیالتش میاد روی بگه آجه من حکم الله رو باید نمیکنم من اول من صد هزار تا پول بگیر این اجره اجره است. در من هر دو تونو یکی 50 هزار تا من بگیر 100 من حکم میکنه آقای خوبی از که در مصباح الفقاهه این دقیق بوده در موانی سکمه لیمین هایی اشکال نداره از تو جایز دونستن اما تو مصباح الفقاهه فرمودن عظمت مقام قضاوت اختضا میکنه که پول گرفته نشته حالا بهش اضافه میکنه قضاوت به احکام الهی حالا میکنه قضاوت دنیایی خیلی مهم نواجه یعنی این حیبت این مقام رو میرفتاید که شما من به این دانه هایی آ یکی حکم اللهی که از محفظت دارم بود گرفتی این حیبتی برای حکم الله در نفوس نمیمانه این خلاصه درید اینشالله فردا عدل را اگه جمع حول بکنیم، به نفسی نهایی اینشالله اللهم <تصفيق> صلی علیه بکنم بکنم